مرزهای دانش برنامه از انجمن استادان و پجوشگران ایدانی کنون ای خردمند وصف خرد بدین جایگه گفتنندر خورد به گفتار دانندگان راه جوی بگیتی به, گیتی، به و به هر کس بگوی زهر دانشی چون سخن بشنوی از آموختن یک زمان نقنوی با تقدیم احترام و ادب و سلام و درود خدمت هموطنان و همزبانان ارجمندی که به برنامه مرزهای دانشگوش فرا دهند علی اکبری هستم و امروز خوشحالم در خدمت شما هستم اگر برای اولین باری که برنامه گوش می کنید، برنامه مرزهای دانش برنامه هفتگی انجمن و استادان و پژوهشگران ایرانی است که هر هفته در همین ساعت چهار تا پنج بعد از ظهر از رادیوی خدمت شما تقدیم میشه. انجمن اساتید و پژوهشگران ایرانی نهادی مستقل، غیر انتفاعی، غیر مذهبی، غیر سیاسی که بیش از 20 دو خورده از دن سال 1987 حالا که به سب رسیده در خدمت جامعه ایرانی است. انجاماً با همت و فعالیت های گروهی از استادان و پژوهشگران ایرانی تشکیل شد تا با کمک به دانشجویان و استادان و پژوهشگران ایرانی تبار خدمت کوچکی در در به جامعه ایرانیان مهاجر انجام بده. پس از بیست سال تلاش مستمر میتونم بگم این انجمن توانسته به عنوان یک نهاد علمی که مورد وسوق جامعه ایرانی تثبیت چه و در این مدت انجمن از طریق معرفی دستاوردهای علمی متخصصین ایرانی تبار و همچنین از طریق مساعدت به دانشجویان و فراغ تحصیلان جامعه ایرانیان مهاجر تلاش چشمگیری در راه اطلاع نام ایران و ایرانی داشته باشد اصولاً این ماه آوریل، اپریل و ماه می، دو ماهیه که در اکثر خانواده های ایرانی که جوانانشون مرحله یا مقطعی از تحصیلات رو تمام میکنن، یه شروحال دیگری دیده میشه. درست مثل شروحال باغبانهایی که کشاورزانی که زحمت کشیدن و با تلاش مداوم خودشون شبان روز باعث شدن در گیاهی به گل بشینه گل به میوه تبدیل بشه یک بزنگاه و مقطع خاصی در زندگی تحصیلی هر انسانی هست که به فارسی بهش میگیم روز فارغ و تحصیلی من از این اصطلاح هیچ و خوشم نیومده چون هیچ کس از تحصیل فارغ نمیشه ولی اسطلاح دیگه پایانه جشن پایانه یک مقطع تحصیلات این یک از اون روزهایی که به قول امریکایی ها باندینگ ایجاد میکنه یک بند ناف ایجاد میکنه بین نسل ها و روزیه که غیر از عکس گرفتن و شادی و گل دادن و اینا افراد فامیل به کسی که این همه زحمت کشیده و نیز به اون باغبون هایی که در این مدت داشتن نگهداری میکردن احترامی میذاره حدود 17 سال هست که انجامن استادان و پژوهشگران ایرانی در راستای بزرگداشت علم و در راستای ایجاد رابطه بهتر بین نسلها مراسم سالانه ای رو داره به نام بزرگ داشت یا تشویق فارغ تحصیلان ممتاز ایرانی این برنامه هر سال در ماه می اتفاق می افته. امسال نیز در روز یکشنبه شنبه ماه می مراسم سالانه بزرگداشت و جشن سالیانه یه فراغ ممتاز ایرانی هست این مراسم اصولا برای قدردانی و تشویق محسلین برجسته ایرانی تباره که با درجه ممتاز از سطح دبیرستان تا دکتراین یعنی در مقاطع مختلف تحصیلی در سال قبل فارغ تحصیل شدن و در 16 سال گذشته اگر به طور متوسط بگیم چون سالهایی بوده که 170 فارغ تحصیل رو مقدر دانی کردیم جواعزی دادیم سالهایی هم بوده ولی حدوداً بوده 100 تا اگر بگیریم که متوسط بوده 1700 جوان ایرانی و خانواده هاشون در این 17 سال گذشته در این مراسم بودند یک لحظات بسیار دلپذیری رو یک لحظات بسیار دل تمام افراد خانواده چون هیچ وقت یادم نمیره این مسئله رو که یک دوستی به من گفت در یکی از این مراسم که من مراسم فارغ تحصیلی زیاد شرکت کردم میریم و یک چیزای روتینه وجود داره که انجام میدیم و میان و وقتی اسم عزیز خودمون رو میشنویم بلند میشیم و دست میذاریم و هورا میکشیم و عکس میگیریم و می امروز تنها روزی بود که وقتی این معدل این بچه ها رو دستاورت های بچه هایی که نمیشناختم شون فقط ایرانی بودن ایرانی اسم ایرانی داشتن برای دونه, دونه از ته دل دست ددم و افتخار کردم ایرانی هستم همچنان که خود اون بچه هایی که میان علاوه بر مراسم فارغ و تحصیلی رسمی که دارند، در مراسم فارغ و تحصیلی که استادان ایرانی با یک شکوه و اعتبار خاصی در اون روز از این عزیزان قدردانی میکنند. برای که راجع به این مراسم بیشتر بدونیم، من از دوتا از همکارام دعوت کردم امروز که در خدمتشون باشیم، جناب دکتر محمد سنگلجی استاد حسابداری دانشگاه سیسان کلستیت نورتریج و دوست و همکار بسیار عرج مندم جناب دکتر آبدینی هفته گذشته خودشون راجع به این مسئله صحبت کرد اجازه میخوام که اگر امکان داشته باشه با دکتر سنگلجی صحبتی داشته باشم آی دکتر رو خط هستن آی دکتر سلام کردم خدمت جنابالی سلام می کنم. خیلی خوشوقتم که مجازدن می توانم در برنامه شما شرکت کنم و از همکاری دوستان عزیز ایرانی که تا به حال در حدود چندین 15 سال به ما کمک کردن لحاظ مالی و همچنین فکری که بتوانیم به دانشوهای ممتاز ایرانی خودمون که باعث سربلندی ما هستند، کمک های مالی و فکری انجام بدیم همونطور که اطلاع،, اطلاع دارید در دو سال گذشته اللحاظ مالی دانشجویانی که از ایران آمده بودن و کسانی که در از ایران کمک مالی دریافت میکنن خیلی گرفتاری داشتن که پول به آمریکا بیارن و شهری های دانشگاه رو پرداخت کنند و کتاب هایی که قیمتش روز بروز روز گرونتر هم میشه اینها را برای خودشون تهیه کنند به طور کلی اللحاظ مالی خیلی در مزیقه بودن و خوشبختانه ما توانستیم به تعدادی از دانشجوان ممتاز تا اونجا که ممکن بوده درباره امور مالیشون کمک کنیم به برای شهری پرداخت شهریه و همچنین دادن یک پول کتاب تا اونجایی که مقدورمون بوده و میتونستیم انجام بدیم این انجام دادیم که باعث بسیار خوشحالی من و سایر دوستان و همچنین خود سرکار هست بس عرض کنم خدمتون به طور مثال در حدود چند دانشجوی در قسمت طب داشتیم که اینا درجه تخصص خودشون رو بگیرن و برای حضینه های دانشگاهی یه گرفتاری داشتن که اونو ما کمک کردیم و یکی از اون خانومها ها دانشگاهی ممتاز که باعث افتخار همه ما هست به در دانشگاه هاروارد ایشون قبول شدن و دارن فوق تخصص میگرد چند نفر دیگه در دانشگاه یوCLل مشغول هستند و من خیلی خوشحال هستم که این کار رو تونستیم انجام بدیم و اینها موفق خواهند شد و به این افراد تا اونجا که تونستیم در بود بود به به دادیم که چون میدونیم اینها در آتی قادر به درآده خوبی خواهند بود و این قرار حسنه ما که بدون هیچ بهره ای هست اینو به ما برخواههم برگردون و ما میتونیم برای دانشجو دیگری استفاده کنیم جناب دوتر سنگل جی من در مورد همین منابع مالی چند تا سوال دارم ا اگر اجازه بفرمایید از بر آگایی ها عبور بکنیم خدمتون برگردیم خواهش میکنه نگران هزینه جراحی لسه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تحصیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310 553 15 83 من فرانکلین محری سرتیفاید فانیشو پلانر پروفیشنل همین جمعه نوه صبح در مورد مسائل مالی برای افراد نزدیک و بالای سن 50 صحبت خواهم کرد. 310 446 34 84 مرز های دانش برنامه ای از انجمن استادان و پجوشگران ایرانی با عرض سلام مجدد خدمت هموطنان و همزبانان ارجمندی که به برنامه مرزهای دانشگوش میدهند. در ارتباط با برگزاری مراسم سالیانه جشن فارغ و تحصیلان ممتاز ایرانی برای قدردانی و تشویق محسرین برجسته ایرانی تبار که با درجه ممتاز از سطح دبیرستان تا دکترا فارغ و تحصیل شدهاند صحبت میکردیم در خدمت جناب دکتر سنگلجی بودیم و بعد هم خدمت دکتر آبدینی خواهیم بود آقای دکتر سنگلجی سوال بنده اینه که اولا آیا انجمن هیچ گونه پولی برای خودش برای این ها فعالیت هایی میکنه اصولا در نظر گرفته یا فعالیت های انجمن داوطلبانه است و این منابع از کجا میاد و سومین سوال من اینه که اگر افراد خیری باشند در جامعه، تصویری که, که در جامعه در امریکا در بسیار پذیرفته شده است. اکثر بوچه های دانشگاه دانشگاه‌ها از این دومنتی میاد که آدمایی که دستشون به دهنشون میرسه و دیگه خسته شدن از تعداد خریدن آپارتمان و ویلا و غیره و میخوان دست دانشجو رو بگیرن انجام میشه. و خواهش خواهش میکنم که در این سه موردی که آیا انجمن فعالیت‌هاش داوطلبانه است؟ دوم اینکه منابع مالی چیه و برای کسانی که بخوان به این کار خیر اقدام بکنند آیا مسئله تکس و اینا چطور خواهد شد؟ خیلی خوشحالم که این نکته رو فرمودید و بسیار مهمه واسه از کنم که تمام کلیه فعالیت‌های انجمن به طور داوطلبی انجام میشه و حزینه اداری ما در حقیقت هیچه تمام حزینه ها رو خود ما افراز و انجامن تقبل میکنن و هیچ به ما به هیچ کسی نه حقوق میدیم نه هزینه اجاره داریم هیچ نوع حزینه ای ما نداریم فقط بعضی مواقع هزینه خیلی کمی برای پست پوستج داریم که این تنها هزینه س که وجود داره و دیگر هزینه که وجود داره این مسئله جشن همون هست که اون هم سعی میکنیم که با حداقل بودجه و هزینه انجام بشه موضوع دوم اینکه ما یک انجمن قوم هستیم که از طریق از طرف اداره مالیات IRS اجازه دریافت کمک از پابلیک از عموم مردم را داریم و تمام پولهایی که به ما کمک میشه که برای دادن اسکالرشیپ و همچنین قرض بدون بهره به دانشجوهای ممتاز به کار میره تمام این پول هایی که افراد خیف برای ما تهیه میکنن کاملاصد درصد از تکس اون افراد قابل کسب کردن می باشد. و ما اجازه این کار را داریم که از پابلیک این پول ها رو تهیه کنیم و خیلی خوشحال هستم که در عرض این پ ده سال گذشته تعداد قابل توجه از دوستان و سروران عزیز این محاف کردن و به ما کمک کمک مالی دادن که ما این را دا برای دانشجوها ها بهکار ببریم، یکی از دوستان عزیز هم تقبل کردند و انجام دادند مبلغ خوبی به ما قرض دادند که ما اینو به طور رایگان و به طور قرض حسنه به دانشجوهای ممتاز بدیم که اونها وقتی کارشون انجام شد این پول پولو پس بدن و این ما و برگردونیم و من میدونم که این قرض برای ما میمونه و این افراد خیر این پولو پس نخواهند گرفت ما ولی خیلی خوشحال هستم که این کارا رو میتونن انجام بدن و با ما همکاری کنند و ما بتوانیم این ای که به گرفتیم به نحوه احسنی انجام بدیم آقای دکتر بعضی از نحات های فنی هرفعی و فرهنگی هم در سالهای گذشته برای این مراسم و احدای جوائز به محسنین ممتاز کمک کردن به انجامن بله. بعضی از این اسامی رو اگر خاطرتون هست الان اکادمی پزشکان ایرانی از همون سالهای اول با ما همکاری کردند، انجمن مهندسین و آرشیتکها این محبت داشتن و هر سال به ما کمک کردند. ارز کنم که بیشتر افراد خیر بودند که من اجازه ندارم که اسمشون و در اینجا بگم شاید مایل نباشن چون یک سالی ارز کردم یک مقیه افرادی تذکر دادن که با این کار رو برای کار دل خودمون انجام بدیم و مایل ما نیستیم که اسممون در رادیو گفته بشه ولی که تعداد, تعداد خوبی هستن و انشاءالله روز به روز هم این تعداد بیشتر بشن و از پونسد دلار امکانش هست که اونها کمک بکنن و اگر مبلغ سه هزار دلار بالاتر باشه ما میتونیم یک اسکالرشیبی به نام همون شخص به نام اون فامیل به نام فردی که اون شخصی که پول به ما میده مایل هست که این اسکالرشیب به نام اون باشه ما میتوانیم در جشنمون اینو مطرح کنیم و به نام همون شخص داده بشه این موضوع بسیار جالب است چون ایرانی هایی هستن که پدر مادر پدر بزرگ امون یک دوست مشهوری دارن یا دلشون میخواد که یک اسکالرشی به نام اون افراد باشه در میتونن از این موقع استفاده کنن و به ما با ما تماس بگیرن و کمک مالی به ما انجام بدن و ما این اسکالرشی به نام اون شخص مخصوص هم در جشنمون بطرم میکنیم هم در کتابچه همو بیذاریم هم بعدا از کنم که این سبت میشه در تمام مداری که ما دارم. آقای دکتر شاید وقتشه که اساسا جامعه ایرانی همینطور که اشاره کردم مثل جامعه امریکا واقعا فعالتر در زمینه اینکه بخواد با دانش و دانشورز و دانشجو همکاری بیشتری داشته باشه یعنی همچکه جناب عالی مستعزدید سالهای اخیر الحمدلله یه تعدادی از ثروتمندان ایرانی مبالغ قابل توجهی چندین میلیون دلار به مراکز دانشگاهی متعدد این باعث واقعا خوشحالیه و امیدواریم که در ارتباط با انجمن استادان و این مراسم احتای جوایز اسکالرشپ به محسلین ممتاز ایرانی که باعث سربلندی هستند باعث افتخارن هرچه بیشتر داشته باشیم که به نام اونها این بورس های تحصیلی احتای بشه یا به نام عزیزانشون و این از اون سنت های بسیار خوبه آقای دکتر من قبل از این که با جناب دکتر آبدینیس و اگر مطالبی هست که جناب آلی که صحبتی بفرمهد خوشحال میشن بشنوم من یک نکته دیگر می خواهم ارز کنم که دانشجوهایی که تقاضای اسکالرشیب یا لون و در, در این موضوع با انجان ما تماس می گیرن بسیار بسیار ممتازی هستند. من خیلی خوشحال هستم که می بینم سال به سال این دانشجوهایی ممتاز تعداد چون زیادتر میشه. و میدونم که کار آای دکتر آبد میفرمایند که انتخاب این دانشجوها برای دادن جایزه به آنها بسیار بسیار کار مشکلی چون همهشون ممتاز هستند و سال به سال هم این درجه امتیاز این دانشجوها رو به می داره و باعث خوشحالی ما س من خیلی خوشحال هستم که ایرانی هستم که این چنین دانشجوهای برجسته رو ما داریم و میدونم در اوکی نزدیکی هممون اصلا خیلی طرفرا هستیم روز به روز سرفرازیم بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد شد آی دکتر سنگلجی من به نوبه خودم از زحماتی که در تمام این مدت ها در مورد جمعآوری کمک های مالی و اهدای این جواز جناب شخص جنابالی به کمک کردید منجومن تشکر میکنم و از جنابالی خداحافظی میکنم داری داری تشکر میکنم مرمزد. هر شبت که برای اینکه جزئیات این جواعز رو که اگر عزیزانی در خانواده دارید و میخواید اونا در این مراسم شرکت کنن جزیاتش چگونه هست چه تاریخی چه چیزی باید داشته باشن اینا در خدمت جناب دکتر کامران آبدینی هستیم آقای دکتر ارز سلام دارم خدمت جنابالی سلام ارز میکنم به شما جناب آیدین و شنوندگان عزیز این که هفته خوبی رو شما گذروندین. بسیار باعث سفرازی منی که من دوباره رجبه این موضوع دارم صحبت می‌کنم این 17مین باری که این برنامه رو داریم انجام میدیم و من شانسی داشتم که در این 17 سال هر سال بتونم برای این مراسم خدمتی بکنم بسیار هم کارهایی که جنابالی انجام دادید آقای دکترینو بدون تعارف و اینا عرض کنم بسیار یعنی سنگینی اینا میگن سهم شیر روی دوش جنابالی بوده و هر سال اینو با اشتیاق کامل انجام دادید و همیشه من این اون شوروحال رو در شما میبینم و از حمایتتون قدردانی من از این دانشجویان و دانش نمیبینم میبینم اینو به من این انرژی میده که هر سال بتونم با وجودی که بالاخره برنامه سنگینه سال آینده با انرژی بیشتری وارد این برنامه بشیم و دوستان همکارانم هم هستن و همونجوری که دکتر سنگلجی فرمودن که چه تمام این کارا داره داوطلبانه انجام میشه ولی خب تاریخ کرده این من از طرح شده سال درسته یا اشتباه شما الان باستی که 25 سالتون تمام شده باشه تو خب به 37 مثل 20 سالگی آدم انجام <تصح> بدیم من قبل از اینکه به آگ... آگاهی ها برسیم بلد. چون داریم نزدیک میشیم میخوایم این آگهی رو اول گوش بکنیم بعد خدمتتون از که شما نوایدین بفرمایید کلاس، موت، زیبایی، محمد محمد تراه مو و زیبایی ستارگان ایرانی و آمریکایی از پانزدهم همه در سالن کیمبو بورلی هیلز محمد در دویست و بیست و نورت در بورلی هیلز تلفن سی سد و ده only هشت, هشت پنجاه و چهار. همین سه‌شنبه 1 بعد از ظهر دکتر فرشته امین نویسنده کتاب رمز موفقیت ایرانیان در آمریکا و مدیر امین لیدرشپ سنتر در مورد موفقیت و خوشبختی با شما صحبت می‌کنند 310 922 80 قیمت های مخصوص سوپرمارکت سبزی در هب 4۶ که ونتو بلوارد سینه ای مرغ بدون استاق پوندی 249 ماهی سمن درسته پوندی 399 پرتغال هندوان چغن 5 پوند 1 دلار کجه فرنگی روند 2 پوند یک دلار گردو پوندی 6 و چه نان سنگک دانه ای دو دلار برنج باسماتی سبزی پوندی 1 و نو با پارکینگ رایگان 8 745 سی در آه. آه. آه. آه. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا کئی آی آر این ششتد و هفتاده ای ام دانش برنامه از انجمن استادان و پجوشگران ایرانی. با عرض سلام مجدد در ارتباط با جشن سالیانه فارغ تحصیلان ممتاز ایرانی صحبت می میکنیم که امسال در روز یکشنبه شنبه 18 ماه در می در یوسیله برگزار میشه در خدمت جناب دکتر آبدینی هستیم. آقای دکتر لط بفرمایید که اگر شنوندگانی که گوش میکنن کسی بخواد خودش یا افراد فامیلش رو نامزده دریافت این جایزه بکنه چه کار باستی بکنن؟ بله. قدم اول اینی که به سایت اینترنتی انجمن که apps.org apsih. پی مراجعه کنن و اونجا به عکس فرد اصیدی پارسالو رو میبینن روی اون اگر یک انگشتی فشار بدن و یک کلیکی بکنن می به اون صفحه ای که تمام اطلاعات روش هست به اضافه اپلیکیشنی که باید پر بکنن و توسط همون ایمیل برامون بفرستن این اپلیکیشن همون هست موقعی که پرش کردن میتونن بفرستن و در ضمن پایینش هم یک ایمیلی هست که مدارکی که باید بفرستن و خود کسی که نامزد شده ای و یا کسی که پدر مادر اونی که این شخص رو کرده میتونه مدارک رو به اون ایمیل بفرسه حالا همونجور که اتدا داریم ما هم دانش آموزان ممتاز و فارغ تصید ممتاز و ما برایشون این جشن داریم و همینی که برای کسانی که از دانشگاه در مدارک رو میشه کردیم کسانی که دانش آموز هستند و دارن از دبیرستان فارغا تحصیل میشن باید مینیموم 3 ممیز 8 از 4 نان ویتد یعنی موقعی که کلاس کلاسای ایپیشون اگر اونتو نذارن میشه 3 ممیز 8 اگر کلاسای ایپی ورداشتن و اونا رو معدلشو بگیرن کلن اکثر کسایی که دارن شرکت میکنن معدلشون بالای چهار و همونطور که هفته پیش من راجبش صحبت کردم و شما خودتونم تشریف داشتین میدونین ما دانش داشتیم که بالای چهار نیم دانش آموزانی داشتیم که بالای چهار نیم معدلشون بود معمولا در حدود 10 تا 10 تا 15 نفر از این دانش آموزان ما قبول میکنیم و نسبت به معدلی که دارن و این اولا که معدل به اضافه اون SAT امتحان SAT که ورداشتن هم یک مینیمومی داره مینیمومی که ما گذاشتیم اونجا نوشته شده و اگر اشتباه 1850 1850 است و البته بازم میگم اکثر این دانش آموزان که شرکت میکنن خیلی بالاتر اونه اصلا پرفکتش هم داشتیم که کاملا بالاترین این گرفته بودن به اضافه اینی که اکثر این دانش, دانش آموزان در ضمن کارهای دیگه هم کردن و مدارک دیگه هم گرفتن جایزهای دیگه هم گرفتن که این مدارک و جوایز رو توسط ایمیل کپیش رو برامون میفرستن به اضافه ریز نمرات که ما همه اینا رو چک میکنیم و بعدا از این دانش آموزان خواهش میکنیم که تو این برنامه شرکت کنند. یعنی اون اپلیکیشنی که فرم میکنن و داره که میفرستن اینا همه ریویو میشه و بعد از اینی که تصمیم گرفته شد کیا دعوت بشن دعوتنامه براشون فرستاده میشه یه سوال مهم آیدکتری نه که اینها آیا یه تاریخی هست که باید تا اون زمان انجام بده بعدش ده. دیگه قبول نیست یا نه ما یک تاریخی همیشه هم میذاریم و خیلی هم سفت روش باین و برای امثال سوم می تمام این مدارک باید به دست ما برسه. که این برنامه 18 می خواهد بود و بین 3 می تا 18 می تمام این کارایی که از دوتنامه فرستادن و تمام این کارا باید انجام بشه به اضافه برنامه ریزی اون جشن. یعنی 4 می دیگه اصلا اون کمیته نگاه نمی دیده. کنه. درده که تعداد <تصفح> کمی شدن خدا رو شک که از من این نفرت دارن که بعد از 4 می بعد از این روز که دیگه گذاشتیم دیگه قبول نمی‌کنی بسیار اما خاطرتون باشه اونایی هستن که امسال دارن فارغ تحصیل میشن ها اینم توضیح بفرما این اساسا بیشتر لوت کوین تحصیل می اونایی هستن که در سال تحصیلی 2013 2014 دارن فارغ تحصیل میشن یعنی تا جون امسال باید دارن باید فراح تحصیل بشن کسانی که پارسال تو تابسونم بودن اونها هم در این گروه هستن یعنی بله. که که تا آخر تابستان پیش و فال، وینتر و, و سپرینگ امسال ولی اگر تابستان امسال بشن باید دیگه سال آینده برای آینده میره بله. خب این یکی از اون شش مقوله یا شش گروهی بود که به سفرق تحصیلان دبیرستان بله. بعد رده بعد چی قرمه؟ من این روی اجزه بدیم بطمئن. که اینم خدمتون بگم که دبیرستانهایی که ما قبول میکنیم دبیرستانهایی هستند هستن که در جنوب کالیفرنیا هستن که ما بهشون دسترسی داشته باشیم فقط فقط کسانی که در جنوب کالیفرنیا یعنی دستانجلس تا طرف سندیگو کسانی هستن که باید بتونن در این برنامه هم کنند این هم یه چیز نکته مهمیه برای همه که اگر کسی نتونه در این برنامه شرکت کنه اصلا وقتش هم طرف نکنه بر اینکه ما کسانی داریم که دوست برند و این برنامه بیان و اگر جایزه هم میگیرن باید به دست خود کسی که برنده شده بده پس اجازه فرماید مطلبی که فرمودید در مورد کسانی که از فاراغ و تحصیلان دبیرستان هستن بایدیدی که جنوب کالیفرنیا باشن ولی رده های بعدی رو که قراره بفرمایید برد. اونها میتوانن از جاهای مختلف برد. برد. بزن. حالا به لده لیسانس و فوق لیسانس که برسیم بزن. برای لیسانس و فوق لیسانس کسانی هستن که در دانشگاه های هستن همه کار دانشگاه های چه خصوصی باشه و چه دولتی یعنی البته خصوصی را هم خدمت نارز کنم که برای دانشگاه هستن که شناخته شده هستن و دانشگاه هایی که فرزن رشته هایی رو ارائه میدن که بیشتر عملی هست ما اونا رو قبول نمی کنیم. در ضم خاطر رسنا باشه جونیور کالج هم هم قبول نمیکنیم چون دو ساله به های رو می خواهیم که چهار ساله باشه برای لیسانس. باز. و پس لیسانس و فوق لیسانس کستانی هستند که از دانشگاه های کالیفرنیا بازم به خاطری که ما وقت داشته باشیم بهشون دسترسی پیدا کنیم و بتوننم در زم در این برنامه شرکت کنند. و معدلشون هم باید برای دیسانس سه و نیم به بالا باشه برای فوق لیسانس سه ممیز بله و همونطور که هفته پیشم شهر دادم بسیار کار دوشباریه یعنی سه و نیم گرفتن سه و هفت گرفتن برای فوق دیسانس آسان تره تا اینی که سه و نیم گرفتن در بعد از در, در دوده 120 تا واحدای سمستری و از دفعاً 190 تا 180 تا واحد کوارتری که آدم بتونه تمام نوراش انقدر باشه که معدلش سوونیم باشه به بالا و برای همه رشته هاست در زم خاطرتون باشه که فقط مال مثلا تب و مهندسی و اینا نیست باره هر رشته ای و خیلی خوشحال میشیم که رشته های میبینیم که توی آرت دارن هنر دارن تحصیل میکنن به هر رشته ای قسمت بعدی کسانی از لیسانس هم اگه اجازه بدین یه ذری بیشتر در بشکافیم کسانی که مثلا MBA میگیرن یا MS میگیرن یا MA اینا که دیگه همه با آشنایی دارن به اضافه اون بعضی از فاقلیسانس ها هست که هیچ کدوم از اینا نیست مثلا MPH Master of Public Health این هم یک یک دیگه یه که همه اینا قابل قبوله به اضافه ما وارد رشته دکترا میشیم حالا کسانی که عذر ببخشید اون قسمتی رو که داشتی توضیح میدید میدادید بفرمایید یعنی هر گونه فوق دیسانس عمم از جدی ام بی ای ام ای ام, ای، ام ای، اینا همه میتونن همه اونجا هست بله بله, بله. خاطرتون باشه ولی این بازم اونم خودش قسمت میشه اکثر فوق دیسانس ها های دو ساله هست بازی از واقع لیسانس ها و یا مدارکی هستن که در دوره چهار ساله هستش اون دوره چهار ساله مثلا فرزن میگم جیدی دوره چهار ساله هست و اینو جزوه قسمت ایمان دکترها راجبش صحبت خواهم کرد صحیح ده. و بعدش کسانی که دارن دشته دکترا حالا چه پی ایشتی میگیرن چه امدی میگیرن چه جیدی میگیرن هم خودش کدگوری دیگه داره از اینا خوب کسی که تا اون رده رفته دیگه صد درصد معدلش عادیه و صد درصد نمرات خیلی خوبی داره به اضافه ریز نمرات ما یک نامه میخوایم از از استاد راهنماییشون که این شخص با امسال داره, داره پارغا تحصیل میشه و مدارکشون هم میشون میفرستن باز هم برای همه این دستبندی های مختلف تمام مدارکشونو بفرستن از همه مهمترین که باید ثابت بکنن که امسال دارن پارو تحصیل میشن چون که یه بارم ما یک شخصی رو داشتیم که داشت دوره دکترا رو می‌گذرون و خیال میکرد که دوره تموم میشه اما استاد راهنماش با من تماس گرفت بعدش گفتش که نه ایشون امسال هم درخواست تسلیم فکر میکنم فاز دیگه هم پاس بشه واسه همین یه ذره ما راجع بیشتر سخگیری میکنیم که مطمئن بشیم در ضمن توی دکترا که گفتم MD, دی JD دی همه اینا هستن و ما خوشبختانه خیلی هستن که در رشته هایی مثلا توی UCLA بزشکی در UCLA بزشکی USC همینجور اینایی هستن که اطراف هستن و میتونن شرکت کنن باز هم یکی از شرایطی شر... شرکت اینی که بتونن شخصا در اون برنامه حاضر بشن ولی محدودیت جغرافیایی نسبت در اون دانشویی که بله بل. این اشخاص تو تمام آمریکا میتونن در این برنامه شرکت کنن بد. و اگر بتونن در این بایندام خودشون حضور پیدا کنن که یعنی یکی از شرایطشه البته اینم ما باور داریم که بعضی از اوقات مخصوصا کسانی که پزشکی میخونن به خاطر اینکه بعضی وقتا روز آخر هفته آخر بهشون یا سایمنت میدن که باید در بیمارستان باشن اونا را ما میپذیریم و خواهش میکنیم یا از پدر مادر و فامیل تزدیکشون می‌تونه بیاین برنامه شرکت کنه بجوش. بسیار عالی است. البته اینا کسانی هستند که تو این برنامه شرکت میکنن به عنوان فاراتحصیلان، اما جوری که خودتون نام‌مظله هستین قبل از اینکه ما این فاراتحصیلان رو معرفی کنیم، ی اشخاصی رو معرفی میکنیم در جامعه که بهشون یعنی افتخار مخصوصی میدیم که یادم نمیاد که شما راجبشون صحبت کردید خیلی بفرماید خنال. حتما بفرماید بله. این در این مورد بفرماید. بله و ما ما معمولا در سه دسته مختلف یک کسی که در علم و علوم و رشته های دانشگاهی و یا پژوهش‌های های مختلفشون شخص خیلی مهمی بودن از این شخص عنوانه Uh, senior scholar یعنی uh, outstanding به being a outstanding uh, scholar کسی که پژوهش و یا علمش در تمام سیستم دانشگاهی اثر گذاشته از این شخص ما دعوتی می‌کنیم که معمولاً کینوٹ uh, اسپیکر و سخنران اصلی این برنامه هم هستند و افراد مختلفی بودن همونجوری که خودتون میدونین هفته پیش رجب دکتر ریچارد فرایز صحبت کردن که ایشون اومدن باز فارسی و انگلیسی صحبت کردند جناب احسان یارشاتر بودند، جناب هلاکویی بودند، سرکار خانوم مریم روبوگرام پارسال بودن اگه خاطرتون باشه دیگه کسانی که به فکرم میرسه های دوکر کریمی حکاک بودن ارزوت بله. بسیاری از ناماوران دیگه ما رسیدیم به معبر آگهی های اجازه بفرمایید گذری کنیم و از شنوندگانی که سؤالی دارند بعد از اینکه برگردیم خواهش خواهم کرد که روی خط تشریف بیارم تشکر می‌کنم. حراج فوق‌العاده ناگیلا آغاز شد. حراج بزرگ صابیانه فروشگاه آشنای شما ناگیلا در پیگوبولوار به مناسبت عید نوروز و, و موعد پسه آغاز شد. با خرید دیگه شش کوارتری استیل یک دیگ دیگر از ناگیلا مجانی بگیرید. یک میوه خوری طلایی بخرید و یکی هم از ناگیلا مجانی بگیرید. یک سیمی استیل بخرید و یکی هم از ناگیلا مجانی بگیرید. با خرید کتری آن را از ناگیلا مجانی بگیرید. انواع اجناس کادویی قاشق و چنگال، بشخاب و پشت‌سینی با قیمت های مناسب در ناگیلا. انواع آبگرمکن و پلاته شربات در ناگیلا موجود است. از این حراج بیسابقه با هتف فوقیس که برای رفاه حال شما در نظر گرفته شده استفاده فرمایید ناگیلا در 8938 پیکو بولوار تلفن ناگیلا 3102718098 ناگیلا شنبه ها تعطیل و یک شنبه ها باز است با پارکی رایگان 870 AM ای ای لس آنجلس ارزهای دانش برنامه از انجمن استادان و پژوهشگران ایدانی با سلامی دوباره خدمت جناب دکتر آبدینی هستیم در ارتباط با جشن سالگانه انجمن استادان و پژوهشگران برای قدردانی و احدای جوائز به دانش مختگان و فراغ تحصیلان و امسال صحبتی میکردیم از هموطنان عزیزی که در مواردی که به این جایز ارتباط پیدا می کند اگر سوالی دارند خواهش می کنم که به تلفن 323-512-7264 تکرار می کنم تلفون 323-512-7264 زنگ بزنند آقای دکتر در تمام سالهایی که در این ای که این اپلیکیشن ها رو پرسشنامه ها رو نگاه میکنن فعالیت داشتید اون چیزی که خاطرتون مونده از اونایی که العاده بودن یا بعدا مثلا ارتباطشون رو حفظ کردن میخواستم ازتون بپرسم ولی میبینم که تلفن هایی داریم اگه اجازه بفرمایید برای احترام به شنونده هامون بریم روی خطوط بعد من سوالم رو دوباره تکرار کنم شنونده عزیز عرض سلام دارم خدمت سلام از بنده احسن لونی احسن که فرمودید من دیتیلی متوجه نشدم غیر از این که این برنامه هست می خواستم برم به چجوری متاغازیان چه کار باید بکنن حسنا در ارتباط با هر گونه سوال چه در مورد این برنامه چه در مورد فعالیت های دیگر انجامن دارید باید تشریف ببرید به سامانه انجامن انجامن استادان و پژوهشگران ایرانی حالا اگر گوگل بفرمایید میشه Association of Professors and Scholars of Iranian Heritage اگر بخواید تایپش کنید که میشه www.apsih.org تمام چیزا اونجا هست، نوع تماس هست و اطلاعات دیگه وجود داره. به شنونده بعدی میپردازیم. عرض ادب و سلام دارم. خدمت شما اگر صدای بنده رو میشنوید. با من هستی بله عرض عرب. سلام عرض میکنم سلام با سلام خدمت آقای دکتر آبدینی میخواد یه سوالی دارم پزشکی از ایران مدت سه سال اومده دندون پزشکی دانشگاه نمازی شیراز تموم کردن و ده سال سابقه خدمت دارن پارت ای پارت بی پژوهششون در مجله دندون پزشکان فک و جراحان فک و دندان امریکا چاپ شده مقالشون و به عنوان اسیستند کار کردن ولی به هیچ رقم راه هنوز به دانشگاه پیدا نکردن و دلیلش هم نمیدونم و هیچ کس هم جوابگو نیست برای این مسئله و رکوماندیشن های بسیار خوبی از پروفستور های و چه در ایران که اونجا بودن دارن ممنون شما هستم اجاز بفرمایید دکتر جواب اگر اجازه بفرمایید من لوس بکنی یا یه تلفن میدم خدمت شما شما به این شماره تلفن تلفن کنید پیام رو بذارین و من سعی می‌کنم اونجا جوابتون رو بدم چون که راجبه یعنی سوال شما راجبه این برنامه امروز نیست تلفن 899 ب... بفرمایید 869 2569 ممنون شما 909 8692569 این پیغامو برای من بسرید و من سعی میکنم با اتون تماس بگیرم و جوابت نو یا از طریق اینترنت هم میتونید با عرض کردم که همون www.apsih.org تماس بگیرید اونجا contact information همه چیز وجود داره آی دکتر فرصت زیادی نیستش و ازتون خواهش کردم که از خاطره اون محسنینی برد. که در خاطرتون مونده حالا به علت های درخشانی که داشتن یا به هر دلیل دیگه من سه چهارت خاطره دارم که برد. برای من خیلی جالبه یکی شخصی که ایشون از برکلیک رجویت شدن پدر آمریکایی مادر ایرانی و اصلا با شوق خود این شخصی که یعنی از موقعی که دبیرستان تمام کرد و بعدن لیسانسشو گرفت و فوق لیسانسشو گرفت بعدن داره دکترا میگیره هر سال که با شد تو این برنامه شرکت کرده بر این که دوست داشتهش اینجا بیاد و با این ایرونیای دیگه باشه میگم بازم یعنی کسی که تو آمریکا بزرگ شده پدرش هم آمریکاییه یه خاطره دیگه دارم اینه که یک دخ... دختر دانش آموزی که از ذبیرستان داشوارو تسلیم میشد و ایشون هنرمندی هم بود باوجو که معدل بسیار بالایی در دوران چهار نیم داشت و ایشون نمیدونم برای چی راستش رو بخواید خیلی سخت برای من اینو باور کنم عاشق کمانچه بود کسی که تو آمریکا بزرگ شده بود و ایشون اومدن هنرنمایی کردن و کمانچه بسیار قشنگی اونجا زدن در تو این برنامه از دانش آموزان و دانش جوانی که شرکت میکنن و در ضمن در هنرم یک ا سرغی دارن خواهش میکنیم که بیان نماییم بکنن و ایشون اومدن کمانچه بسیار قشنگی زدن اگه خاطرتون باشه اصلا همه شوکه شده بودن که یک دختر جوانی که معمولا در اخره ها بیشتر دنبال اگه بخوام موسیقی بزنن میرن دنبال گیتار و نمیدونم جاز و اینجور چیزا ولی ایشون رفته بود دنبال کمانچه همه فن و دوقا ساز بله. مورد علاقه بنده هم هست میفرمایید بله بله و الان من میتونم بگم که در حدود شاید مثلا سی چهل نفر رو ما داریم که در ر... یعنی طبقات مختلف از دانش آموزی تا این آخر در اینجا شرکت کردن یه خوبیش اینه که نشوندنده اینه که ما میتونیم ممتاز رو انتخاب کنیم این ممتازا که میان دانش آموزی بعدن همون جور ممتاز میمونن تا آخر برنامهشون حالا هر وقت برنامه رو تموم کنم. در زمین اینم من بگم که البته ما اینو ما میدونیم که ممتاز بودن فقط و معدل و SAT و اینا نیست در هر رشتهای هر کسی میتونه ممتاز باشه در زندگی میتونه ممتاز باشه و معدلش خیلی بالا نباشه ما فقط به این چیزا دسترسی داریم موفقیت هر دانشجو و دانش آموزی در آینده نشند اون که بر میگردند و به کسانی که بهشون قبلا کمک کرده بودن از پدر مادر گرفته تا بقیه بتونن کمکی بکنن اینا به نظر من موفقیت خیلی بالاتریه اما ما در این برنامه فقط به کسانی که در این رشته ها موفقیت و ممتازی توسط دارن و تونستن تون رشته شون به دانشکات اون کارش موفق بشن ما داریم این جوایزه میدیم نکته درستی رو فرمودید و اضافه کنم که از دید بنده موفقیت وقتی است که این همه تلاش و کوشش خانواده و فرد باعث بشه که اسم ایران و ایرانی با اعتبار بیشتری آورده بشه و باعث اعتلاع نام ایران و ایرانی بشن در شرایطی که در چند سال گذشته به علت مشکلات سیاسی همواره ایرانی ها به عنوان یکی از جامعه، یکی از, جا، یکی از مهاجرین، یکی از جوامه مهاجرین متاسفانه بعضی وقتا با بیمهری مواجه بودند و از طریق علم، از طریق کوشش های علمی این جوان ها میتونیم ثابت کنیم مثل بقیه مهاجرینی که اینجا زندگی کرده هند. که ما هم کمتر از بقیه نیستیم و جوانای ما دارن رشد میکنن و دستاوردهای درخشانی در این زمینه داشتند. آقای دکتر قبل از اینکه به پایان برنامه برسیم اگر مطالبی هنوز هست که فراموش کردید یا بنده فراموش کردم بپرسند اگر اجازه بدین من لیست کسانی که با ما این چند سال هم داشتن و بگم چون که دکتر سنگلجی موفق شدن فقط دو تا از این گروه ها رو بگن من زود اگر اجازه بدیم چند تا دیگرم به اضافه کنم انجامن فارغ تصفیلان نفت آبادان هستن آکادمی پزشکان ایشون فرمودن اسمشون رو گفتن و دیگه بعد از ایش این ایشون اسم شخص رو نمیگم فقط اسم گروه ها رو میگم دوستداران دکتر پاکروان هستند، هستن انجامن مهندسین و آرشیتکت ها ایرانی هستن انجمن استادان و جوشگران ایرانی که خودمون باشیم به اضافه گروه نیپاک هستش اه اه و گروه ایرانی امریکن ویمن هستش و دکتر مشتهدی که بله انجامن فارد دبیرستان الورس هستش انجمن فارد اصیدان خارزمی هستش و اینا انجمن مهندسین نه بابرشید انجمن رفات فنی هستش اینا کسانی هستند که به ما اسمینان کاملی داشتن که ما بتونیم دانشجویان و دانش آموزانی رو پیدا بکنیم که برای آینده ایران و بختوسن ایرانیانی که در آمریکا هستن درخشان باشه خیلی ممنونم آقای دکتر آره، من مجددن این آدرس سامانه ی انجمن رو ارز کنم و دعوت کنم مجددن از کسانی که خودشون یا عزیزانشون در فامیل امسال در مقاطع مختلفی دارن فراغ و تحصیل میشن بسیار خوشحال میشیم که در اون روز و در اون جشن ما هم شرکت داشته باشیم و جوائزی رو خدمت این عزیزان بدیم و ازشون قدردانی کنیم آدرس جوان هست www.a حروف انگلیسی ای k s i h o r g اوله با تشکر با تشکر از آیدین عزیز از همه هموطنان خداحافظی می خدا نگهدار شما باد. مارس های دانش برنامهای از انجمن استادان و پژوهشگران ایدان